Thank <laughs> you. بفرمایید مینااجونهقدر جیغ و هوا نداشت به بخاطر این بهشتاشتون که شا خودم پیدا نمیکن جو دست نددم به لباس های من دست زدم و ما بش رو دستیدار به لباس های من دست می زنید. بله خب میدونم توون جناوالی کلاستون به لباس من من نمیخورره میویه خوب خودم میدونی ولی یه بار دیگه وصل من دست بزننی به خدا هم دو از تو و خفت میکنم میفهمی؟ ووی مثلا چیکار هم می کنی؟ منو میکشی؟ تو رو خدا من رو نهکشش خواهش میکنم. برو بابا دیوونه بونه خود چه <تصفيق> درخشی با. شما بابا آورمون رفت تو در آمسایه همه اشتاداتون بلنده چی بپوشم چی بپوشم بابا چی فکر میکنن مردم؟ هایی بابا وقتایی که میخواییم نشنبه میشنبه وقتی که میخوایم بشنبه میشنبه خلا هم فرمتا چرا؟ چون که عشقی توه خیلی بخواه خیلی بخواه شو سبه را میخواید باید این هم یکی آره اشکال نبه میشون بعده چند تا پسر کورو کشل بهتر از این دو تا دختر بود شیرم کسی اینا رو بگیره بگره راحت خونه این بخش اینو بابای ای کنطرول ها کوشش اینو اینه ها ششگه اینو من که خموش کردم بعد از جرده نرسیدی؟ اینه نگمه داداشی نکنه منتظری اون بیاد ازت خواستگاری کنه تعرف بکنی به خدا سارا به خدا اگه بتونی رازش کنی شعر با یه شوهر با کلاس برات پیدا میکنم تزمینی تو اگه این کاره بودی سال تمام من مجبور نمی کردی بساید تیغون پسخون ببرم حالا میای یا تنها برم نه تو تنها برم میترستم جلوی دانو... بچه های دانشگاه خجالت بکشی اوها از کهی حالا تو این همه ملاحظه کار شدی من نمیدونستم برو حالا بگو روم نمیشه برا در من خلاص باشه سلام سلام سلام چه زید؟ سبیده جون میبینم به دیداره خدا، خدا، ببینم لالا هر نه می‌خوای این داداشه مجنون منو به لطگی داره مینو یا مینو مینو به خدا دیوونه‌ام کردی بگو نظرت چیه دیگه راجب چی؟ تینا و کی خب کی کرم خاکی داداشمو میگم دیگه شروع نکن سارا ببین مینو، تا این دفعه جا بابا منگیرم ویل کونت ایستم. خودت هم خوب میدونی؟ کمک ایفای، چرا دیگه رو نیزو بچین. ای بابا، مادرتون خدا بیامور ده جور غذا روی میداشت تو دو دقیقه. سبزی پولو با مرغ سبزی پولو با ماهی سبزی پولو با تنه مایی ماکرانی، لازانیا، ماستو کیار، ماستو بادم جون یه قرمه سبزی می خواهیم ببین حالا این کمک می اون خدم میخواد، اون دستیار میخواد، اون عشق میخواد. خواهد بیار این دیگه بابا جان یا نصد وای ساه... عنا قبستان می کنی یو ما این جه این دیگه عنا م بودن می خواهد، بگرانه بند بی شما حل شوار کردن باشین من خودم بدنم واسه خودم هاستین بالا بزنم خودشتو میده بابا جم برنجشم خوب رای کرده کدومتون درست کردیم؟ من دیگه بگم باری کرده باری کرده دیگه وقت بشم پس بگم چی شده؟ بیچه کصفه چی رو من شامو دوتارو bozok کردم راستشو بگین. وا چرا پچ‌پچ میکنین هی؟ او بخو قزر دهنم فکادت کسی مرده؟ با ای کسی مرده به من بگینا. نه آقا کی مرده خدا نکنه. آش پاتم بگم که ما؟ <تصف> <عزام> <تصفح> <تصفح> <تصفح> آ ملغا توری شو؟ مرده. بذات خرما رو نمیخورین. شما که صبح هم ملغا چی صحبت کردیم راست میگی؟ آره. باس ام محمود اون یه 20 سالی هم بود زمینگیر شد. نه با... راحت شد. ببین پیشونی اون با... کجا میشوی. تفلک. بابا جون بابا نه، اردون. محمود، چرا ما رو گنده اون سر دنیا حالش رو این‌ور چرا کنه؟ محمود. کی مرده شما دکتر دارین جی ولا زاری بالا سر ما. بخوده بودم می‌خوالمیم قضا مو می‌کنیم. چیزی نه مرده؟ نه. واس بخوده جون بگیر. بخود خب خوبه که؟ چی پسر؟ سفیده؟ سیاهه؟ چجوریه؟ آه پسرم چجوریه؟ نیچی بابا، خوبه بد نیست، پسر خوبیه خب، الان نشه تو ببن چیزه، این داداش شهرکت همکلاسی های دانشگام سارا، بیاد بیت داداششم خودت بیاد قصدگارشم خودش نمیاد بابا خودش کجا میاد داداشش بعد بیاد دیگه اسمی دوست سارا اسم دوستم سارا اسم داداشش میسمه خب چیکاره؟ است هیچ هیچی دیگه الان توی شرکتی کار میکنه ولی هنوز درسش تمام نشده بعد امروز که اومده بودم به دانشگاه دنبال سارا بعد دوباره حرف رو پیش کشید بعد گفتش که بیای ماین. حالا ماشینش چی هست؟ فراید. خب خوبه که پرایده دخترم همین کارا رو میکنیم این طور شیاب والا بابا جون دیگه همه از اول قصر ندارن که خب حالا چی شد هم هیچی دیگه بچ گفتش که بیایم خواستگاری اینا بعد من گفتم که اول باید با بابا جونم صحبت کنم اگر اگر بابا جونم موافق بود خب خوبه که بابا بگو بمینم چیکار میخوام بکنم؟ چیزی دیگر گفتن که بیام خاستگاه یه نه کرده مگه اینجا طویل هست هر کیساریش و نازد بیاد پایین اه, اه بابا. نداره بابا بابا اون درد ای خب بابا من نمیفهمم شما این طرف به منو مینام میگین که های دونتو شوار کنی فلان کنی بعد این طرف که یکی پیدا میشه میاد خاستگاه شما میگین نه چرا؟ محض ارا دکتر چش تفید از قدیم گفتن آسیاب نوبت بی خودم مغلطه راننداص من خوش... به مادر خدا بیام کل چه اولین بعد تو باباجون مگه عهد پادشاه ورپزکی که اولین بد تو اصلا شاید من نخوام شهر کنم اینو بگیره دوباره شهر شلوغ شد قورباغه افتیر کشید بی خود می‌کنی همینجوری می‌خوای همی بره دیشی من بشینی چه عذاب باباجون خفه منو می‌گیره خفه؟, خفه تو خوبی دکتر چش تفید من می‌خوام بشینی دیش, دیش من کجا بتو چی می خود میخونی شوهر میکنی میری خونه شوهره تقدیف من هم اینجا روشن بشه دیگه من از دست خواستگار شوهر فعلا نشته ما گفت من کریه لقمه قرمه سبزی ها شش سفیده بگیره تو دو ببارش کار کنی حالا بذم غذا بخورم فکر بکنم چیکار میکنی گفت چند سالشه دو سال از خودم بزرگتر بزرگت دیب... نبخورم بابا رفتم با بازوکتر خودی هیچوقت رابطه نهاشته باشی کجی دست خودم پس؟ نه همسن خود بهتر ساره خواهی راست اشاره بگم بر برچه نمروان که شدی اینجا به وقتش خواهدر میفهمم حال بگرنم چی میخواهی ساره نکنم من کافه گلسته میخورم. یه ببین تو چی میخوری؟ هم فاوز نکنم. مثل قرار بیاد اینجا نه من چه میدونم؟ حالا اگه یه وقت داداشم گزارش افتادیم برای اتفاقی هم اومد تو اینجا نشست پیش که دیگه فکتر من نیست. فکتر منه؟ نمیسواری نباید برن. خب از از دادشه دوست خواهی کن. من همه چرا باید گفتم و لوتپندی که بهشو اوی نه برو خدا ببخشیم میره خادم همهش تقصیل این سوال است. با این تلفنش مثل خروس بیمار همه چی رو خراب کرده کجای کاری مجنون که بابای مینو از قبل خونه خرابت کرده خوبی اندیش اینه دیگه من ده شب بابام هم حرف در مجرم خستگاری گفت نه نمیشه چون که اول بابای مینو میگه دختر بزرگتره برد چوار کنه بعد تا آوریش نداره. ما نامزد میکنیم وینات که رفت عروسی کرد بعد ما عروسی میکنیم بابا ما هم مخالفه چه برسه به نامزدی یارو رو تو دهران نمیدن سراغ خونه کتخو داره میگیدن ما چی میکیم تو چی میکیم من ایسا هم جوان اصلا منطقه نیست یه همینی که هستیگه بردار من اجال نکنیم بهتر هرچی قسمت بابا نه، اینطوری نمیشه هرشی توی این مدت از دست شما داتا گشیدم بستمه توی خونه که تو ولم نمی هی آماره مینور رو میگیری تو دانشگاه هم که جنبالی محصول هم کردی همه که دیر زبونه من میکشی اینطوری نمیشه من یه فکر بکش دارم خب چیه میدون؟ باید مینا رو شوهر بدیم مینا؟ امکان نداره چرا خودت ازدواج نمی کنی تا که شرایط منو میدونی دونی مینو تا درسمت هم دوست ندارم ازدواج کنم <تصفح> البته من به خاطر رفاقتی که با رزا دارم می ترسمونه به سارا معرفی کنم چون میدونم پدرشو در میاره <تصفح> خیلی هم دلشون بخواد شما چیکار کار داریم به کار من مشکل خودتون رو حل کنید. ببین مینو پسر خیلی خوبیه ها تو بانک کار میکنه دستش دستشم به دهنش می رسه تو بهتره. ببین مینو، رزا و مینه هم ساخته شدن بابر کنم شما سریقه مینا رو نمیدونید شاهر مینا از شکار شیر سختره خب میگم چرا بهش یه فرصت نمیدین خدایی پسر خوبیه، خون واددان، سر به چی بگم بالا؟ تو فقط بگو بله مشکل اینجاست که بله رو یکی دیگه برد بگه نمه خوش <تصفح> خوبه. Se kuusi tämä tämä tämä. Ah, Sii kvreemme Suosina Pohjärjestumman خیلی tätä Alcohol Nure Kylla Hopproblemet جلو ماشاءالله میبینم که آقا چند چرا خوار شما خره؟ خدا اومده این. خیر، خواهر بنده هستن. خواهر آرزو ایشون هستن. ولی اصلا به شما نمیخوره که هم خونم خواهر شما باشن ها. ماشاءالله ماشاءالله هم خانوم همین یه به چشم که دارم کف پاتون اصلا نمیخوره شما میخوره خواهر آرزو بش. شما لطف دارید آقا مظفر. اشکالی نداره آقا مظفر کارم دیگه نه؟ شما اختیار تام دارین، هر چی دوست دارین صدا کنین میتونی بگیه اصلا موزی؟ راست شو بخواین رضا پسر خودم میمونه آرزوم ادامادیشو ببینم <تصفح> اما خانم گاز بگیری زبون رو به شما اصلا نمیخوره که بعد چند دازه آور ازا داشته باشین بفرمایید طور خدا شما هیچی نخورین هم جای خوشک و خلی نیشستیم بفرمایید مینه خانم شما هم شاقلیم؟ نه من کراس بازیگری میرم. یعنی بازی بازیگرشیم؟ نه همینطوری میرم خب همه خانم بفرماییم گلوتون رو شیرین کنیم خیلی لطف دارین حالا اگر اجازه بدین بچه ها برن تو اتاق صحبت رو بکنن اخدیار داریم ما تمام اخدیار اونم دست شماست بفرماییم کجا قراره صحبت کنن آهان بگیم بگیم تمام ما دو صحبت کنیم بفرماییم درم باز بول بزنی خواهش اجازه شما خواستم بخواستم بگم خواهش می کنم خواهش می کنم شما اول بفرمی نه فقط می خواستم بگم که اگه الان من اینجا فقط به خاطر خانواده‌امونه وگرنه مطمئنم که ما به دردم نمی چرا اینا از ظاهرم متوجه شدیم؟ نه اتفاقا ظاهر برای من زیاد مهم نیست فقط شما خودتون گفتین که من کارمندم و درسته ماشینتون تو چیه؟ مهمه بله برای من خیلی مهمه چون که دوست دارم حتی خونه خوب ماشین خوب سالی چند بار خارج از ایران و تامین امینو برای مهمه ببخشید فکر کنم یه اشتباه شده من اومدم اینجا واسه خاستگاری اهه بعد وقت با چه اعتماد به نفسی اومدیم؟ به بخش فکر کنم اشتباه اومدم مینا خانو بله چی به این به سر گفتی فراریش دادی؟ واقعی هست. آه حتما به خاطر همین واقعیته هم واسه که اینجوری گذاشتن رفتم با ناراحتی من نمیدونم با چه اعتماد به افسی بالا شده بودم اومده بود اینجا خاصه کاری هرچی من گفتم. گفتم گفت نه ندارم فقط هیچ چیزی که شاره آدم بودن و انسانیت و شخصیت و که متفرقه را واقعا اینجوری آدمه خوبه که خوبه که آره خیلی خوبه فکر کنم خوابت میاد علی همین میگی میخوام مثلا میگم من نمیخوام ازدواج کنم تو رفتی بگو نمیخوام هممونم گذاشتی سر کار اصلا تووقو داری به خاطر ازدواج تو من میام زندگیمو خراب کنم نه دفعه اول که تیرمون به سنگ خورد اما اصلا نراهد نباشی یا یه راه حل توب دارم ازش من که اصلا چشم آب نمیخوره. خوشبین باش دخترم روژین دختر یادته همون افادهیه؟ آره بیارم یادته خواستگار تا خاستگار اومده رفته به کاوش ورش رضایت داد؟ خوب روژین اه... یه لیست تا خاستگارش درست کرده بود؟ تا بتونه با دقت بینشون مقایسه بکنه و بهترینشون انتخاب بکنه خب خب و زهره مار خالمون دفترچه رو داد بهه این ها راه حلی که میگفتم خسته نباشید روژی نده چهار سال عروسی کرده بکره خواستگارش همینطوری عذب آقلی مودن که برخ آبجی منو بگیرم گفتم راه حلمه اما نگفتم که آسونه اول باید تو این لیست ببینیم کی ازدواج کرده کی نه بعد اونه که ازدواج کردن رفتن قاطی مرگا رو خط میزنیم رو بقیه ما میدیم بله صد نفر آینه به دست کشلی گیساش رو میبست آقا چی شدیم به نو؟ عزیزم هر که تاووز خواهد جوره هندوستان کشد حال پایه یا نه؟ یا نه یا نه؟ پایه ی؟ آره <START> <criticism> چه کم رو هم هستنیم که من یکی دو ماه در سال اینجا بقیه ماهارو خوارج از کشور اون وقت این چیچی پولو که فرمودین اسمشونه یا فامیدشون اسمش که شهر روزه من بهش میگم مارکو کل دنیا رو گرشونن در 80 روز کونطور که نمیده زبال خب گوه البته مینو جون بعد از فوت همسر من شهروز جون من یا هم مارکو پولو کل ثروت که این های نشده البته من درکنه شنستم و شهرت هم همه رو برای من گفته خیالتون رو همش آه. آه. خفه پدرتون راست میگن شما هم حرفی داریم با من اه بخشی فکرم پر خفه میشم نمیدونم به هر کدوم از اینه که زنگ میزنم یا یارو ازدواج کرده یا ازدواج کرده طلاق گرفته یا کلا اصلا بیخیال ازدواج شده اه سارا اون پسر بود که گفتی باباش کارخونه داره و گفتی که عروسی کرده ولی چند هنوز ازدواج نکرده و اینا اون چی؟ آها ها اون نه به مامانش زنگ زدم گفت پسرش بعد از زبایش میخواد بره خارج. او نمیشه چون منم فکر کنم مینا می‌خواد بره خارج بعد از ازدواج. نه بابا مینا اصلا جونش به جون بابام بسته تکون نمیخوره از اینجا. حالا یه چند تا دیگه مونده تو لیستم. حالا باشون قرار بذاریم. تلفنی باشون هماهنگ کنیم. میگم اگه زنگ زدون قرار شد بریم بگیم میسام بیاد با میسام بریم. ای کلک، تا هم که میخوای به هر بهونه این داداشو من رو بکشونی اینجاها نه، برای اون نمیگم براخره دلاخلت... از ببینم این همه خواستگاه رو مدرافیش کنون جواب نداد نه؟ چرا؟ از یکی دوتاشون مینا خوششون مدرب. ولی بابام ردشون کرد. که خیلیم که سایه آقا مزفر همیشه بالا سرتون باشه خدا رو شکراره، واقعا بابام بهترین بابای دنیاست بفرمایید. دستت درد نکنه عزیزم. فحش میکنم کنم. دست شما درد نکنه. ممنون. اجازه آجا مودب باش بابا جان. سُخت. ببخشید. ان شاء الله در بموتخگی هم داریم. خب. دستت هم عزیزم. آره خوشگله. ببخشید. جوونن دیگه، هول میشن یوا. فداي تو رو خودش عارم اشکال نداره آقا. زود بدهیم. فداي سالت آقا اشکال نداره آزادی تشویق نیودند. با دوستاش رفتن شماه. ايه چی جارف؟ یعنی میخوسم این برگرده و درم دارم گرفته باشین که تو برای چی دوست من با میجنم اماده نمی دونستم که باید پس هم, هم بیارم. واقعا؟ تو چی ایشون هم تو نه. باید ای آخه. بودا بودا. من رئیس یه شرکت بزرگ صادراتی هستم همسرم هم یه چند سالی فوت کرد آوه خلا میدونم که شما اومدی خواستگاری چرا اتفاقا هم؟ ازدواج من برایشون حل شده از مشکلی نداره ازدواج شما؟ آره عزیزم برای محمد جون اومدیم خواستگاری مینو جا مینو زدیگه از کنین تو اتاق من با یه آقا عرف دارم پاشم اینو ببخشید خب با قله میگفته با اینجوری میکنه؟ یعنی واقعا به ازایت اینا خوبه من از اون که سالکیه تنهایی بود اینم که جای بابا بزرگت کل پول داره میدونی اینکه تا آخر عمرم تامین کنم میرم مسافرت خارج از کشور کل بلندری دنیا رو خرید میکنم ببین چی میخوام دیوونه بعدو وقتی یعنی زندگی آره نفاس زندگی یعنی با یه پسر آس و پاس و فقیر و بدبخت آخر عمرت حسرت بکشی بشینی گنج خونه پیرش افسردش این یعنی زندگی نمیشه تو حرکت مینام من اصلا تو درک نمیکنم واقعا نفهم چی میگی اصلا من تو درکت کنم آره احراث میگه این چیه؟ تو بانک میخوایی نه شوهر تو خونه هیچ گونو میشون به در شما نمیخوره ببینم نه گونو منتزلی اینی که یا اصل شاخداری یا شاهزاده ای چیزی دختر شو اینو همش واسه این کانالای اجنبیه حالا تو این دور از اونها خلاص یام و بعد بچسونی بهش ناز میکنی بابا بابا باو درد باو زهر ما با, مار، با کوف ببینا سمون رضا چش بود رادش کردی ها به ضربه خوبی آره امشب خوب بود اونم شما آخو اونه دختر چیز بچه برادرش هم شما شما مناسبه اصلا حالا که این شد فقط با رضا ازدواج کنید دیگه حرفی نباشه توش فهمیدی؟ خیلی همه مال چش پر رو آره برو آخواشم من سر در کارهای شما در میکنم آشانه تو دورت من داره پروازی وازی در میاره نا تو میگه پرو شده چی؟ برش کن بابا اصفی خودتو خود نکن از داشت ندارم یه چیز میشه دیگه بری بجیر برنش بخورم بخور بره بابا این کم دیگه برنش گفتم بکشت هستمم این چرا که یا؟ بابا گوش نمه بری سکم برنش بخورم این کم دمونم نداریم بیا ادقا بدون خورش بخور میگم بینوشیم بابا این شد از اقل پای خاستگار باز شد صدقه سر شما این اینا وقتش باز شد خودش سخت میگیری البته تو به من حالا با چیزی کی؟ yeah. یه چیزی بگم چی؟ بابا چی؟ گوش بدم یه چیزی بگم میگم از وقتی که حرف ازدواج من شد و اینا خب همطوری هی خواستگار میره و میاد خب من میگم یکی از این خاستگار رو اگه بر من بیاد چی میشه؟ خب خب ایوانشو میزرم پشت دست با... پر رو خون بشه بازو باقیهشو بگم برو شدی یا برو نشدم به قرآن گوش بده ببین دختر یک کار میکنی با پشت دست پشت... چی میشه با من دل ندارم بابا اگه من ازدواج کنم اینو ازدواج کنه هر دادامون عروسی کنیم بریم بابا تو تنها میشیم منو نمیذارن که تنها بمونی که خودام برا واستین والا میذارم. من دخترت چی؟ فهمم. ما میمونیم سر زندگیمون. ان شاء الله خوشبخت بشی بابا. علی فراد، چرا تو که تنها باشی؟ منو اینا که رفتنیم. تو میبینی؟ من سر حرفم هستم. اول مینا، و بعد شما. بابا بابا و ده. خواهش میکنم بابا. گفتم نگه اون رو. او خاصی گار چه فایده؟ معلومه چی به بعد وقت میگن زبان بسته ها فرار میکنن. که. بابا شما خودتون میبینید من مثل مینا نیستم. ها بابا خواهش میکنم چی؟ بابا خواهش میکنم بابا با یه خواستگار میاد واسه تو هم دیگه اینقدر جون نده بذار آبجید بره بعد ای قربونت براه بابا کپولم ایداخت گوش کن بابا من میگم یه خواستگاری یه خواستگاری ته ته تهشم یه نام زدیه کوچیلو این پر رو میشی. نه بقی خدا پر رو نمیشم باشه ها. گفتم چی است؟ میزنم پشت دست عادت pore خون بشه. باشه بزن. با اگه حرف بعدی میزنم حالا بسو بیان یه خاستگاری. <تصفيق> <تصفيق> ولی من سر حرفم هستم. اول مینا بعد تو. تو گوزو بعد فرصه اصلا چرا بدون خورش داری می‌خوری؟ قورمه بشم. می‌زنم. چرا؟ آخ. منو گاز می‌خوری. مامانم سوار نکنم. قورمه. تو یاد گازش می‌خوری یخی یار. رژیم داره اگه نمی‌دونی. آوه. تو لوس نکو. بیدیم ای اینو خانوم رای حلای من همیشه جواب میده خاستگاره چون یاد من خیلی خب باشه هر دوشت اما بیشتر خاستگاره من چه تو بس حله دیگه نه حله حله بس مبارک مبارک. دفع. بفهمیم بفهمیم خیلیم بابا چا؟ نخفند از در نکنه من چای نمیخورم نمیخوری؟ بفهم صفا آوردین بفرمایم گلوتون مزرگم کنیم بفرمایم چایی نمیخورم خوش آمدیم صفا آوردینم اس بوینه او سوف میخواین برن حرفشونو بزنن دوتا تا جمع. ببینن چه میشه سنگوشونو وا بکنن به دردم میخورن ببینن کوچیشو میاد دو داره نداره نه فکر نمی نیازی باشه مصفر چون تو یه ساله به طور نامحسوس همه چیو راجب جفتشون بهشون گفتم از این به اون از اون به این بروونه دخترم برم که دیگه حرفوشم زده ببین چه دخترم چطور رفته است حرفوشم زده باری کله بابا باریش آره خب من مینه خااننم خوب میشنسم فکر می کنم میشونم من خوب بشنسم. خب درد بعد کنم که دختر من واقعا دختر نجیبیه. یا یعنی به جیب میب کاری نداره پو تو من میدم. بله. البته من برام صداقت مهمه و شخصیت و تفاهم. آهان، آ آه وقت سر ماه به صقونهتون تو جای کرایه صداقت میدین نه؟ ا ا گپم همین دیگه اگر صداقت نباشه خونی نیست که ای هم باشه <تصفح> خوبه اشاره دادنم که خیلی خوب بلدی ا مینوجو دوستای کیتریم خب بچه با هم دوست باشیم به نظر من اصل کار عروس و دامادن که همدیگه رو دیدن و پسندیدن شرایی تا که قبول کردن بله بله اینشالله کمی اتفاق بیفته حالا بفرماییم گلوتونم و نگم بفرماییم ممنونم ببینیم باقا جان بیرای آقا باش بفرمای فقط من یه چیزو گفته باشم من سر حرفم هستم و من تا دختر بزرگم شوهر نکنه دختر گوچیکه رو شوهر بده نیستم افتاد اینشالله که این وقتت خوششومه بختی می نخوانم اجازه ب بدی... همین شب مقدمات و این طرف ها سلام راستشو بخوایم اومدم برای تحقیق این میسم یه آدم بدذات و بی مسئولیت و بیشیله بی پیله که نگو <تصفح> <تصفح> حالا واقعا اومدی تحقیق؟ آره دیگه اومدم ببینم همسر را کجا کار میکنه و از همه مهمتر همکاراش کیا پس اومدی آمار منو بگیری شما اینجوری حساب کنی؟ یاری کمکی هم که با خودتو بردی سلام سلام دیگه این شیرنی و پخش کن بین همکارات چیه این قضیهش عروسیتون دیگه ببین ولش کنی نارو بقیه لیستو بچسب از پنشتای باقی مونده توی لیستم چهار تاشون هنوز از او اقلی یعنی چی یعنی این که بلاخره می نخانومو افرستیمش خونه ی وقت شوار جدی میگی؟ بله خبر نداری خاله جون با آقای مزافه هم هنگام کار با وقت خواستگاری گرفته. آراستی شرایط مالی همهشون هم بیست. البته این آقای ما مینا فقط دنبال پول نیست. بس دیگه انقدر قیمت نکنین. هر آدمی یه جوری دیگه. ولی اگه مینا ازدواج کنه خدای آمد من آدم رو زمین میشم. اون وقت آرزو ازدواج مینا؟ آره خوب اگه مینا ازدواج کنه من به همه ی ها می رسم. این زبان کار از میده ها میده از خوش تربا نگه داری اینجا؟ خب بیای الو؟ سلام چی هست؟ آره یه پسر خوشتی با پولدار مطئنی پسر مشکلی نداره؟ از نظر من که نه ولی از نظر مینا خانم بالا چی بگم؟ تو زحمت افتادی ها من باست خودم دارم همه این کار رو میکنه آره میدونم باری بازم دسته درد نکنه خواهش میکنم خدافز خدافز الانو تعریف کنم ببینم چی شدی و حواس زن گرفتن کردی از خانواده غر کردی اومدی الان گفت چی جنای خانوادهت کجاست کجا؟ والله راستش خانواده خارج از کشور هستن بله هفته آینده ان شال تشریف میارن از اونجایی که خانواده من به شدت آرزوشونه که من ازدواج کنم البته خب من اصولا علاقه به این کار نداشتم ولی خب با صحبتایی که دوستان کردن دیگه مجاب شدم که ازدواج کنم و خانواده رو به آرزوشون برسونم و وقتی برمیگردن برشون سورپرایز کنم. یعنی فقط به خاطر خانواده‌تون می‌خوای ازدواج کنی؟ راستش تا قبل از اینکه بیام اینجا بله ولی الان نه. خوب ببینم. الان یعنی فکی فامیلی، خاله ای، عمه ای، ای، دایی هیچ کسی رو نداری تو بیاری؟ من اصولا با فامیل در ارتباط نیستم. معمولا اید بید میبینم چون معمولا ایران نیستم باقید ترتیلاتو ممکنه باشم خب کجا میری؟ همینطور که خدمتون عرض کردم در حال حاضر تنها چیزی که تو زندگی من کمه یه شریک و همراه همراهه وگه نه من هیچ مشکلی توی زمینه ای ندارم آنبخ شما شغلتون چیه؟ ببینید خیالتون راحت کنم من اگه تا دیویس ساله دیگه هم بشنم و تفریه کنم بازم پول برام میمونم فهم خواستم بگم که میدونم چی میخواین بگین یه عروسی باشوکو یه خونه بزرگ نه دیگه که میخواستم بهتون بگم این بود که اونم به چشم ماهی دو بار سفر خارجی. نه من میخواستم در مورد خانوادتون و تحصیلاتتون با صحبت کنم که حالا اشکال نداره رفت در مورد موضوع بعدا صحبت کنیم ها را میرم ها شدش من بزنم کدر تو بری بعدا چون روخی کنم میشتر باش آشناشم اینا ای چی ای؟ باید تنها نفرستشون تو می باشون به کلش جل دارم ببین، جل که سردگیره حواسطش رو جا رکیده سرد آها سردگیره آها سردگیره اما دفت هم از بردش نیست آها دفت به خلو می کنم خیلی رست jos haluat tehdä jotain, niin tehdään. Jos haluat tehdä jotain, niin tehdään. Jos haluat tehdä Oma naara, lepäs naara, آخ آخ آخ چیه خبره؟ جاب خیلی خالی بود. جاب خیلی فاصلی داشت شما درنکن. چیه؟ الان بخور شربت الان؟ من نمیدونم. مگه با حقوق کارمندی میشه زندگی کرد؟ بذار من با مدیر داریم صحبتی بکنم. اصلا بیا پیش خودم ها. ممنون باباجان. من از کارم راضی هم <تصفح> <تصفح> میدونی شما مثل کی میمونی؟ مثل کسی که یا اون پوشش یام نشسته فکر کنه ماشین دنیاست. در حالی که ماشین دیگه ای زوار نشده این که کار کردن نیست عزیز من این جون کندنه ببخشید آقا بابک هم داره میگه میخند ولی همه چی که پول نیست اینا همه شعاره راست میگه من خودم معتقدم پول خیلی چیز خوبیه یعنی اگه نباشه تو نمیتونی زنده ای کنی خودش مگه چم کنیم زنده ای کنیم مگه خب هر یه نظری داره دیگه چی بگم بله دارت میخونم اینده هم دستشویش کنم چه یه ها دستشویش خانم اون از رو اندهی کردن و رستوران رفتن چون اینم از اگه اینجوری باشه دیگه ما با شما بیرون نمیه واه، حالا مگه چی شده؟ این جنبه شوخی یا؟ شوخی نبود، من تلک بود بچه ها من یه سر برم همونجه که با اجان آقا با تو کجا میری؟ اونه چشونه؟ میسم؟ دارم که برسم زنگ میزنم خدمتت الان پشت فرمونم نمیتونم صحبت کنم باش چشم من میام دنبالت چشم چشم خیالتون راحت راحت چشم چش میام دنبالت کاری نداری الان الان پشت فرمونم باش مرسی خدافز خدافز خاستگاری خواستگاری خواهر نامزد من. مبارک باشه خبر نداشتم. چه آدمیه آدمی زیاد نمیشناسمش. میگن به ساز بفروشه. من که نمیدونم کار خاصی انجام بده. یه ذره رفیق بازیه. حالا قراره بعد ازو بیاد دنبالم با هم بریم بیرون. خوبه تو هم بیا بریم. وگرنه قراره با جناغت بشه. برو بالا این لپتاپو اومده؟ حالا میای تو؟ نه برو مديرماله. من میرم کارم انجام میدم بعد. بعدش میبینم. آره این رفته بیرون منم تنها گفتم بیخوار کاری عقب رو بکنم آسیمینو دارم با این پسری میرم بیرون آره گفتم برم یه خورده بیشتر بشناسمش. چیزی شده؟ خب یه جورایی تحقیق دیگه این اخلاق تو با دو کیلو کلی تلاه هم عوض نمیکنم اگه عوض نکنی که به عقلت چک میکنم میسه یه چیزی بگم بگم مشنور داره ها چیه خب بابا گفت بهت بگم همین روزه با خانواده‌ات صحبت کنی تاریخ عقدو مشخص کنی جدی میگی آره اصلا باورم نمیشه ببین <تصفيق> مثلا خودم باورم نمیشد دیگه فکر کنی روزا دیگه بعد بریم خرید عقد و این چیزا اصلا باورم نمیشه آخه بابا دیگه ازولت میره خیالش راحت شد یعنی من دارم به آرزو میرسم شما فعلا بریم به تحقیقاتتون برسیم بعد با هم حرف میزنیم باشه باشه خدا فز خدا باشه باشه میبینمت خدا با بی خیال فردم میارم مراد. از دو دوتا چک میفرستن برام بخرش چقدر؟ نیویس نیویس ده بخرش آره آره میبینید نمیزهان یه دقیقه با فامیل جاییدمون خوش باشی میگم. بگم میگم با اجناک فامیل نمیشه <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> نمیدونم با جناب بستنی میوه ممنون ممنون اسم بستنی یاب میوه یا پرتغال هم. آقا بابک ما آدم نبودیم دیگه حالا فامیلدار شدیم آره یادت زد باشه باشه بایتو روست نکن بابا بیا کمکتو سلام خوبی؟ می‌جنبه؟ گفتم فردا با جا به عقد حرف بذاریم، نه الان بیا بشیم باید کار دارم چیه چیزی شده؟ یه چیزایی هست باید بهت بگم در منو چی شده؟ در مورد خودمونیست، در مورد این پسره هست خب؟ این پسره از اون پسره که همش تو این مهمونی با کلی پسر و دختر رفیقه از همه بدتر. علم مواد مقدرم هست. تو همه اینا رو توی یه ساعت فهمیدی؟ آره. وا. خواستان برای چه ماده خواستگاری از هم برای عروسی کنه. نمیدونم. امروز تلفنش نیزه رفت رو پیغام یه دختره بود. همه این حرفارو اون دختره زد. امشب با هم قرار گذاشته. وای میسم. میسم والا چیکار کنی؟ چند روز دیگه قراره عقد کنیم بابا به خاطر مینا راضی شده بعد الان ببین بگیم چی آه. بعدم اصلا از اون گذشته مینا خانم بالاخره بعد از این همه بروبیا و خواستگار و اهن و راضی شدن با یکی عروسی کنن. میسم چی کار کنیم وای وای میسم اصلا شادم تو پشیمون شدی شاید چون چند روزی عقد بمونه ترسیدی ها تارف نکنم شادم ترسیدیش هم روزی عقدمونه. مینو مینو بی مینو اصلا معلومه یا پشیمون شدی، یا ترسیدی، یا یا اصلا دارد به اون پسر هستیدیت میشه میدونه وای باورت میشه بلاخره یکی پیدا شد همونیه که من میخوام میدین چی میگن یکی دیگه هموبری افتاده میدین یکی دوستم عرسیمون رو تو کشتی بگیری وای فکر کن تو کشتی خیلی خوبه الان باش شرح زدی؟ آره آره بهش زنگ زدم گفتش که دارمی هم استخل ولی کوشیش خاموشه مینام تاله داشت پرشیدی قصدش از ازدواج چیه؟ آره یه چیزهایی بهم گفت ولی یهسی رو نفهمیدم اینکه انقدر دوست داره با عجله ازدواج کنیم کنیم خونوادش قی میاد دو سه روز دیگه براسش رو بخواد زیادم ناارحت نیستم حالا خوم ماباشت دنبالش رو بیافت تا هید خت این کار بکن و کار نکن بکن با با حصلهداری. از رفیق بازی هم هست خب آره مجرد دیگه ولی مطمئنم بعدن که ازدواج کنیم خره خودم که هم می دونم امینا، من کمی دلم شوهر میزنه کاش آدم تحقیق میکردیم. می, کردیم. می چیه؟ من واقعا به احساسم اطمینان دارم. هر موقع که احساس خوب دارم اتفاقی خوب برم میافتم. الانم دقیقا هم احساس میکنم که واقعا با این خوشبخش میشم شاید فکر کنی که مثلا به خاطر پولش یا اینکه میتونم تری این خوشبخت باشم، ولی نه. وقتی ماون مرز بیامرز مادر خوشی نداریم توی زندگی. یه بابای غرغرو، یه زندگی معمولی. یعنی واقعا حق همون که خوشبخت باشی. چلو باید برم میدونم دستم ناراحتی میدونم کارو بعدی کردم اومدم از از دوست کنم فراموشش کن اتفاقا اینجوری بهتره باش می بهتر باید میشه هم بهتر بشناسی. باید من احسابانی شدم زود بگو کار دارم باید برم از رفتی مامان هم فوت شد خدا رحمت شد بابام خیلی عصبی شد ما هم خوش زندگی نکردیم اما تو این چند روز همه همون میخنیدیم می هم بابا هم من هم مینا تا اینکه تو اونو گفتی دوباره همه چی میریخ به هم مینا قمدیم میشد منو بابا ناراحت نفهمیدم چی شد از همینی شدم نیستم تا نفهمیدم به چی گفتم از همینی خواهد من ببخشی درگم کنی ببین من آدمی نیستم که تو زندگی می کسی حسودی کنم و یا این چیزایی که تو فکش می کنیم از این خیجانت هم ندیم واقعای در مجردی باور که خواهر تو همین خواهر خودمه درسته که تفکراتش قبول ندارم ولی نمیخوام باعث بدبختیش بشن. فکر کردی من این چیزها رو نمی‌فهمم. چرا؟ نمیمم اگه قرار باشه مینا به خاطر من و تو تم به یه ازدواجی نمجر بده من هیچ وقت نمیتونم خودم ببخشم میخوام که اینو درک کنی تو هگه باعث بشه من و به هم نرسیم نیدونم نیدونم میستم آلا بخش آلا بخن ببین مینویش توی به من گفت. خب ولی ممکنه اصلا اون یک مزاحم تلفنی بوده یا شاید هم گوشی بابک نبوده. یه پسری مثل بابک صد در صد مزاحم تلفنی داره. ولی اون منو انتخاب کرده. دلیل نداره که بخواد بهم دروغ بگه. حالا اگه یه باجنقی هم داره که به سعادت میکنه دیگه اون به خوش مربوطه. مینا ببینین من نمی‌بادم اینجا که به حرف های شما گوش بدم. فقط اومدم یه چیزی رو بگم. این که این زندگی شخصی منه و به شما ربطی نداره. فکر کنی من نفهمیدم برای اینکه به هم برسین دوره افتادین که برای من شوهر پیدا کنی. من که اصلا دوست نداشتم ازدواج کنم. شما های اصرار داشتین ازدواج کن ازدواج کن. ولی الان تصمیم میگرفتم بابا اکبر با ازدواج کنم. مینا، منو میسان به خاطر شما هم هر کاری به خاطر خودتون بوده. من بابا با بابا اکبر ازدواج گذاشتم و دیگه حرفی نشنبن. Mm-hmm. ازنان. خودم چهام برام آورشگیر افتادم. اصلا اصلا خودش شدی کیونه ها؟ نه چونیش؟ وای یهیش تاجو چنجه چیکام کنین؟ دوستان راحت اون دستا فالو تو هستن. من چه دارم بابا. یه دقیقه میفهین کاری. حالا بکن، دیگه برای یه بهت میگم یه دقیقه بیفهین کاری. باشه. دوستان راحت اون دستا چون که باباش بهش ارسیمید قدام هر طور که دادش میخواد حرف میزن و همیگه هر نداری تو کنم تخالت کنی هر خواب بخواهم نیره هر کاری هم بخواهم میکنم به تو نداریم عزیزم, عزیزم قرب ندارم گهی نکن توی نمی خواستگارای خوب داری خصه نداره که گور باباش اه نمی‌خوامشونو به درد من نمی‌خوام عزیز من باز گفت نمی‌خوام برای چی نمی‌خواد بابا یه نگاه به دوروبرتون بکنین هر میاد شما رخ پرنس میگیریم چرا آخه بابا مگه نگفتی پولداری آخری پول, آخر پول داش دیگه چی شد بعد من که میدونم مشکل شما چیه اصلا حالا که اینطوره من نمیخوام اذیت باش کنم هر کاری هم میخاین بکنی بکنین خیلی هم ناراحتین از این خونه میذارم میرم دیگه برام مهم نیست شما چیکار میکنین خفه خفه مختار چش سفید پروه بی جلو بابا داره اینجوری صحبت میکنی غلط کردی میری خونه بخ بالا واسه با سفید با کفن قویرم برمیگردی فهمیدی دیگه نمیدونم این تو منم یه سنی هستم گذشته بابا جم الان یکی برای من رو ترک کنه خوش کنه نمیشه که این وسط اه خوشی پدر من تو رو خودم و سر به سرم نذارم من الان اصلا تو شرایط خوبی نیستم به تو ازدواج کنه من بول میدم بعد از من ازدواج کنم اتباقا الان شما تو شرایط خوبی هستی چیه؟ مگه یوغه انداختم به ها؟ من نمیدونم یا شوهر میکنی یا من میدونم تو کردم. <تصفح> نیستم. حساسیت دارم چ جو می بابا جان میو همه چیز برام تعریف کرد. خودود ناراحت نکن. ببین بابا خودو ناراحت کنی باقا قدسه میخوره. خدا سره تو چیزی که هست خاستگار. نه با با من خیلی بدشانم. خ چرا وجانسی اتفاقا هم ب نظر من خیلی هم خوشانسی میدونی چرا؟ یه ده سالی برای یادم آدم نگی کنی بعد از 10 سال بفهمی چم شارلاتا پس خوش شانسید دختره من که همین اولش فهمیدید که بعدش هم تا چیزی که از گاره گفتم ناراحت چی نگران ثروت پول الان چه که دست دیگه دخترم خدا بیامرز مادرت ی حرف خوبی میزد الان یادم نیست یادم اومد حتما برات میگم تو رو خدا خودتونو ناراحت نکونیو این چیه به میو اصلی میشه رب میخواست تو این اون خوشحال باشم چرا بابا با جو؟ مگه با مینورت تو جو باوردیم تو هم میتونی خوشحال باشی؟ فقط کافیه که طرز تو عوض کنی اینجا تو اینجا درست کار کنه درست میشه پول میاد. خوب زندگی کردن ربطی به پول نداره ببین دخترم من خودم هم مثل تو جوون که بودم آرزو داشتم که همش برم سفر واقعیتش خوب همشم هم رفتم سفر یه معذرت میخوام اون زندگی که شما میخواستین براتون نتونستم درست کنم حالا شما به خودتون نگیرین تو هم مثلا اون مینا دوباره میخنی خوشحال میشی ولی من نظرم اگه بخواد من دوست ندارم دخالت بکنم ولی اون خواستگار اوله پسر خوبی بود من یه مقدار نگاش کردم دیدم اهل زندگیه حالا باز خود دانی فکر کنم میشم رضا بود اگه اشتباه نکنم خب بابا جان خودت باشه خلاسه گرفتاری شدیم با این وضعیت این داستان اینترنت و اینا هم که اومده این جوون ها ببتر شرافه شدن چون الان اینترنت خونتون کار میکنه آخ, آخ, آخ, آخ، این 400 هزارتوم هم پول زبی زبون رو دادن بابت یه ماه اینترنت بعد همه هم نگاه میکنیم این کلافه هم چی شده میگه سرعت نداره قطعه حققت میشه اموال دلار چی؟ اموال دلار دارین؟ یه خورده اومده خب خدا رو شکر، شو، خدا رو شکر. سلام آقا مصفر. سلام علیکم مادر. حال شما چطوره؟ خوبون شما؟ کجا نپردین منو؟ واقعیتش اون مقدار سویی ششام رفته دقیق. کجا من منم خانوم هستم عمه آقا رضا. آقا رضا؟ بله، اومدین منزلتون خواستگاریه مینا خانوم؟ حال شما خوبه؟ منم خوبم شما این. بله. خونتون اینجا هست؟ نه خیلی، منزل خانداداش هم اینجا بابا پس بچه معلم هستیم که مشتاق دیدار مشتاق دیدار با اجازتون فیده، خدا نگه دار میرسم خدمتون اوه بخوانم خیلی خوشحال شدم دیدم از تون شد آمد کاشید منم خوشحال شده شما اجید لازمه من کمکتون کنم اومد نه خوش بخوانم خریده کمیه چیزی نیسته اما من پا هم درد نمی‌کنه. آمیخ چه زده دست شما درد نکنه خیلی ممنونم آه شید کنم خوش بس اومدیم فلن خونه, خونه خانداداش موندید نه حالا به خاطر ازدواج رو آقا رزا مجبور شدیم منظوم پدری رو بسوشیم خیلی. اینه که سلام مبقصن خونه خاندالاشم زندگی میکنم به خودم به خانوم جاتون تو بشتیم چیزی منتر از ایسیم دوتون جوون رو اما. به نظر من هم همینه آقا آقا تون این اینجا نه نه خودش. نه خودم شده هم خیلی رسالتیش خود شدن آقا بشت خدا رو کنه خدا رو بچه آرم که حتما فرستادی نومبره آب دیگه نه ها زود خود شدن ما بچه دار نشدیم اه والا حتما زدفر نبوده اما کنون خونه ما جلتشیم دیگه والا با اون جوابی که مینا خانوم دادن شرایطشون بما نمیکره یه هم میخوانمارا شما هم یه مقدار سخت نگیریم چون من با مینا توبت کرده قرار شده که چون میدونم واقعا من رزا رو دیدم خیلی به سر حوالی. خیلی بزارو خون خوده بادش چقدر محترمان خیلی ممنون آغوده خیلی لطفا باشی متشکرم فقط شما فارسی کنم که گومینا کمی صحبت کنیم به هر شما از شما حق شنازی این یعنی چی اون وقت مهیزم بینه دیگه هسته ازدواج ندارن بابا هم تا وقتی من روی سیناکنه شما هم نمیتونید خب این چرا ابتو به کار تو داره متوجه نمیشی ازدواجم کنسله تا نمیدونم. تا روکی می نخوانم عروسی کنه شاید شاید تا نمیدونم چند سال. میشه بگی چند سال؟ میتونم شوخی نمی کنم. شاید چند سال طول بکشه. من نمیخوام تو منتظرم هم باشی. میخوام نمیدونم بایدوزن نمید. خب من میتونم تا ده سال سب کنم. حسام دارم جدی میگم فکر میکردم اون روز که دلگیرم کردی آخرین باری که دست به میشه ولی انگار قرار ه کارات تکرار کنی مینو اگه یه دفعه دیگه ناراحت کنی یا انقدر خودمو میذارم تا فلج یه چیزی را میخوام به جدی بگم دفعه آخرت هم باشی که این حل غلط دست در میری نگران مینام نباشی یه خورده زمان لازم داره باش کمک میکنیم همه چی حل میشه چید مزاهمتون شدم میخواستم با حرف بزنم اگه بشه طوری شده؟ نه فقط اگه میشه بریم یه جو که کسی نباشه باشه داخل کسی نیست بیه تو چرا آمدین گفتین که این آدم خوبی نیست شما که همینو میخواستین میخواستین ما با هم ازدواج کنیم خب میذاشین بعد از ازدواج شما یا من میفهمیدم یا طلاق گرفتم یا بالاخره خری کار میکردم دیگه. حالا اینطوری خوب شد. ببین میه خانم درسته که من آدم پول داری نیستم. ولی یه چیزی از به نام غیرت که من حاضر نیستم به خاطر رسیدن به آرزوم آرزی کسی دیگه رو خراب کنم. اینکه خاطر من آیاندم داریم ازدواج زندگیتون رو به میزییم. نمیدونم هم من خوشحال میکنه هم نارا هم یه نسی صب کنید حرف هم حرف نشده من خیلی فکر کردم و به یه نتیجه رسیدم هم به خاطر خودم و هم خانوادم اینکه تصمیم گرفتم ازدواج کنم واقعا؟ ام واقعا پس به رزا بکم یه شانسی دیگه هم داره <تصفيق> آه الان... کجاایی که دلم خیلی حوا تو کرده بی‌معرفا رفتی و منو تنها گذاشتی دیدی دی به وصیتت عمل کردم دو تا شازده برسه دست گنامون پیدا کردم اگه خدا بخواد فردا می‌خواد بفرستمشون زیارت بابو تل حالا یه چیز دیگه هم می‌خواستم بهت بگم ولی روم نمیشه تلعت میخوام تحجید فراش کنم آقا منم دیگه تنها شدم دیگه سنم داره میره بالا یکی باید منو خوش کنه بالاخره یا نه نراحت شدی؟ خب میخواستی نمیری شوخی کردم باشه ولی یادت باشه <تصفيق> آقا چه کاریه الان میخواد به آقا شیم بری که تو میکنه با با با شیمه دو خرایلت بکنم برم به سلامت آقا جون اجازه هر جا رسیدین به من زنگ بزنین من رو بود کبر منم دعا کنی آقا فقط یواش برا آقا ست باشه به جلوت آقا جون خدا خدا دگه بله خدا خوشم حالت خدا خوشم حالت اوه یوا شما کجا تشیف دارین من میز رذرف کردم رسطورانا منتظرم خدا دیگه